من از مردن خیلی میترسم و اصلا نمیخوام وقتی قرار بمیرم اونجا باشم نمایشنام این مرگ در میزند رو وودی آلن نوشته. بازیگر، کارگردان و نویسنده بزرگ و معروف آمریکایی. وودی آلن فعالیت ایش رو به عنوان نویسنده کتاب تنز و بعد به عنوان یک روی صحنه آغاز کرد و توی دهه شست شروع به فیلم سازی کرد. اندیشه فلسفی آلن متأثر از اکزیستانسیالیزم و فلسفه سرشناسی مثل سارتر و هایدگره. تاریخ دقیق و مشخصی نیست که بدونم این نمایشنامه کی نوشته شده و فضای نمایشنامه مثل نمایشنامه های دیگه وودیالن تم مرگ و نیستی داره زبان خاص وودیالن و شوخی و استعاره های منحصر به فردش در این نمایشنامه کاملا مشهوده و به نظر من نمونه مناسب و معروفی برای ورود به دنیای نوشته های وودیالنه اگر یک مقدار با فضای کارهای وودیالن آشنا باشید، دائما توی نمایشنامهاش و حتی فیلمهاش مرگ و نابودی انسان به سخره گرفته میشه. نمونهش هم فیلم اسکوپ یا همین نمایشنامه. از این جهت حتی اگر خیلی طرفدار داره خانی نباشید هم، این قسمت تعم فیلمهای وودیالن رو داره و میتونه براتون جالب باشه. به نظر میرسه مرگ در میزند ادایه دین وودی به فیلم مهره هفتم اینکمار برگمانه، فیلمساز بزرگ سوئدی. توی فیلم مهره هفتم که اتفاقا دومین فیلم برتر عمر وودیالن هم هست، قهرمان اصلی فیلم مجبور برای خلاصی از مرگ با مرگ شترنج بازی کنه و در اینجا آلن با شوخی و تنازی منحصر به فردش، مرگ رو پای میز بازی جیمیرامی که یه نوع بازی ورقه میشونه و لوپ مرگ رو میکشه. آلن در این نوع نوشته هاش لحظه ای از انکار مرگ و حقیر و حتی زعیف نشون دادن مرگ دست بر نمی داره. اما شاید این برخورد نوعی فرافکنی از طرف آلن باشه. که از ترس شدید و ضعفی که در برابر پدیده مرگ و پایان زندگی در اون وجود داره به مسخره کردنش رسیده همون جمله اول آلن در شروع پادکستم شوخی آلن با همین موضوعه که از مرگ خیلی میترسه و اصلا دوست نداره وقتی که موقع مرگش میشه اونجا باشه بعضی معتقدن که توی این نمایشنامه انتقادهای سیاسی و اجتماعی هم وجود داره اما به علت چند لایگی نوشته این انتقاد ها در لایه های قرار گرفتند و کمتر برای مخاطب قابل درک خواهند بود. پس بهتر خودتون نمایشنامه رو بشنوید و ببینید بیشتر کدوم ت نمایشنامه توجهتون رو جلب میکنه. قبل از شروع اینم بگم که ترجمه ها و نسخه های زیادی از این نمایشنامه به فارسی وجود داره. نمایشنامه کوتاهیه و به خاطر همین به راحتی میتونید توی اینترنت پیداش کنید و بخونیدش. ولی نسخه اصلیش و انگلیسیش هم کلمات سخت و سنگینی نداره و من فکر میکنم همون نسخه اصلی رو بخونید براتون جذاب تر خواهد بود. در نهایت ممنونم از حسی یوسفیان برای خلاصه کردن متن این نامه که برای اولین بار داره با پادکست کار میکنه اون دارم بازم بتونیم از همکاریش در پادکست علف استفاده کنیم. بریم نتیجه تلاش های حسی یوسفیان رو در این قسمت بشنویم. مرگ در می اتفاقات نمایشنامه در نیمه شب شروع میشن. صحنه اصلی نمایش اتاق خوابی توی یک خونه دو طبقه متعلق به آقای نات آکرمنه. اتاق کاملا با قالی پوشیده شده و یک تخت خواب نسبتا بزرگ همراه با یک میز توالت در اتاق دیده میشه و روی دیوارها چند تا تابلوی نقاشی آویزونه. همه این وسایل قرار ثروتمند بودن آقای آکرمن رو به همون نشون بدن آکرمن پنجه و هفت ساله خودش تولید کننده لباس و الان با لباس حمام به تن و دمپایی به پا روی تخت دراز کشیده و روزنامه میخونه تا اینکه یهو یه صدایی میاد نات به سرعت میشینه و به پنجره نگاه میکنه و ترس میگه اینی دیگه چیه؟ شبهی رو با شنل سیاه چسبون و کلاهی به سر میبینیم که از پنجره بالا میاد شما اون تصویر فانتزی خودمون از اسرائیل رو در نظر بگیرید شبه دقیقا همون شکلیه شبه همونطور که به سختی روی لبه پنجره خودش رو نگه داشته با صدای نفس نفس بلند خودش رو داخل اتاق روی زمین میندازه شبه میان سال و رنگ پریده شبیه نات تاس و شکم گنده است مرگ چون کس دیگه ای نمیتونه باشه با این شکل ظاهر میگه یا خدا کمونده بود کمرم به ها نات ما تو مبهود نگاهش میکنه و میگه تو کی هستی؟ مرگ خودشو معرفی میکنه و ازش یه لیوان آب میخواد و نات هم که جا خورده میگه چی؟ مرگ؟ مرگ از لباس سیاه و صورت سفیدش و اینکه امشب جشن هالووین نیست میگه تا نات باور کنه که اون مرگه. همینطور که میدونید مردم توی هالووین لباس عجیب و غریب میپوشن و صورتشون رو رنگ میکنن و از این کارا. به خاطر همین خب وقتی هالووین نیست و یکی با لباس سیاه از پنجره وارد خونتون شده قطعا مرگه و قراره بمیرید. نات هنوز باور نکرده میگه این دیگه چطور شوخییه؟ مرگ عصبانی میشه و میگه بابا شوخی چیه؟ تو مگه نات آکرمن پنجه و هفت ساله نیستی؟ مگه اینجا خیابون پسفیک پلاک صد و هیجده نیست؟ بعد شک میکنه و میگه نکنه اشتباه اومدم. توی جیپاش مال بریگه احزاریه میگرده تا به نات نشون بده. نات نگرانه و میگه از من چی میخوای؟ من واقعا سالم سالمم. مرگ بی اعتنا به دور برش نگاه میکنه و در مورد خونه نات نظر میده. اما نات دوباره به بحث برش میگردونه و میگه من اصلا نمی خوام برم، خیلی سر حالم. هم میگه تو رو خدا شروع نکن که من به خاطر سعودی که داشتم اصلا حالم خوب نیست. اصلا هم حوصله بحث با تو رو ندارم که نمیخواای بری و اینا. نات میپرسه چه سعودی؟ مرگ هم از تلاش نافرجامش برای یه ورود به اصطلاح نمایشی و، شورنگیز میگه اونطوری که طبیعتا مرگ باید بره سراغ یه نفر تعریف میکنه که به زحمت از ناودون اومده بالا اما پاشنه پاش گیر میکنه به چند تا شاخه درخت و ناودون میشکنه و اون آویزون میشه بعدش هم میخوره زمین نات یکم تعجب میکنه و ناراحت میشه و میپرسه تو که ناودون منو نشکوندی مرد میگه نه یه خورده شده فقط تو چیزی نشیدی. چی میخوندی که اینجوری قرخ شده بودی؟ و روزنامه ای که نات میخوند رو بر و یه نگاهی بهش میندازه و از نات میخواد که به امانت بگیرتش اما نات چون خودش هنوز نخوندتش میگه نه مرگ بیحسله میگه نمیدونم چطوری باید بگم بفهمی نات برای عوض کردن بحث به مدل ورود مرگ اعتراض میکنه آخر سرم میگه الان واقعا دیر وقته مرگ میگه خب چون دیر وقته زود بپوش بریم. نات که تا الان هیچ چیزی رو باور نکرده میگه کجا بریم؟ مرد میگه بریم بمیری بریم به همون سرزمین ابدی دیگه و بعد به زانوهای زخمیش نگاه میکنه و میگه که هیچ بعید نیست به خاطر این زخم ها قانقاریا بگیرم قانقاریا یه نوع بیماریه که به علت افونت زخمی ایجاد میشه و در نوع حدش باعث تخریب اون بافت میشه نات که کم کم جدی بودن ماجرا رو پذیرفته از مرگ فرصت میخواد چون واقعا الان آمادگیش رو نداره مرگ درخواستش رو رد میکنه چون کاری از دستش بر نمیاد نات زیر بار نمیره مرگ رو برانداز میکنه و میگه متاسفم اما باور نمیکنم که تو مرگ باشی مرگ جواب میده پس انتظار داشتی که باشم راک هاتسن؟ راک هاتسن بازیگر محبوب هالیوود توی دهه های پنجاه و شست بوده نات از مرگ میخواد عصبانی نشه و بهش میگه که همیشه فکر میکردم باید قد بلندتر باشی مثل تو فیلم ها ولی انگاه شبیه خودمی. مرگ به تندی میگه خب من مرگ تو هم دیگه. معلومه که باید شبیه تو باشم. پس میخواستی شبیه کی باشم. نات برمیگرده سر نقطه اول و از مرگ یه روز دیگه فرصت میخواد. مرگ کلافه میشه و ازش میپرسه که این یه روز رو واسه چ نات اما همچنان اصرار داره که مرگ رو راضی کنه بهش پیشنهاد شترنج بازی کردن میده و مرگ بهش میگه که تا حالا بازی نکرده ولی توی جیمیرامی فوق فوقالاد است اینجاست که نمایشنامه شوخی خودش خودشو با فیلم مهره هفتم برگمان میکنه توی این فیلم یعنی فیلم مهره هفتم یه شوالیه هست که با مرگ شطرنج بازی میکنه حالا اینجا هم این آقای نات وقتی که مرگ بهش میگه تا حالا شطرنج بازی نکرده تعجب میکنه و بهش میگه ولی من دیده بودم توی یه فیلم شطرنج بازی میکنی ها خلاص نات خوشحال میشه چون خودش هم خیلی خوب جیمیرا میبازی میکنه و بهش پیشنهاد یه معامله رو میده نات به مرگ یه پیشنهاد میده که اگر مرگ ببره فورا بهش میره یعنی میمیره و اگه خودش برد بعد مرگ یه روز کامل دیگه بهش فرصت بده مرگ مخالفت میکنه اما نات اصرار میکنه و در نهایت مرگ مجبور میشه که قبول کنه. بازی شروع میشه. مرگ از نات میخواد که ازش پذیرایی کنه و حسابی شاد و راضی به نظر میرسه. نات هم میگه اون پشت یکم اسمارتیز هست. میخوای برو بردار بخور. مرگ هم بهش بر میخوره و جواب میده اگه رئیس جمهورم میومد توی خونت بهش اسمارتیز میدادی؟ مشغول بازی میشن و امتیازهای نات از مرگ بیشتره نات به مرگ میگه که میتونن برای جالبتر شدن بازی به اعضای هر امتیاز یه سنت به هم بدن مرگ قبول میکنه بازی جلو میره نات از چه جوری بودن مرگش سوال میپرسه مرگ هم بهش میگه که میخوای چجوری باشه دراز به دراز میفتی و تمام نات به سوال پرسیدنش ادامه میده و مرگ با خونسردی بهش میگه که بی خیال باشه چون خودش بعداً متوجه کیفیت مرگش خواهد شد. امتیاز ها پشت سر هم به اسم نات ثبت میشه. نات میپرسه بعد از مرگ هم چیزی هست که آدم دلش بهش خوش باشه؟ مرگ از جواب دادن تفره میره و نات دوباره سوالش رو میپرسه. مرگ بهش میگه اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. قرار ولو بشی روی زمین. نات نگران میگه طاقتش رو نداره و مرد بهش دلداری میده که فقط یه لحظه است و زود تمام میشه. دوباره میرن سراغ بازی اما نات شروع میکنه به خواهش و التماس کردن از مرد برای اینکه حداقل یه کاری کنه که موقع مرگش کف اتاق نیفته و جای دیگه‌ای مثلا روی کاناپه نشسته باشه. مرگ مثل بقیه جواب هاش با خونسردی میگه نه و نات رو دست به سر میکنه. نات از کل شقی مرگ کلافه و عصبی میشه و بهش میگه که اون رو یاد دوستش میندازه دوست کارخونه دارش مرگ عصبی میشه میگه مرد حسابی من این ترسناک ترین چهرائی هم که میتونی تصور کنی اون وقت تو یاد دوستت میفتی بابا من مرگم خیر سرم نات سکوت میکنه و آخرین دست بازیشون رو شروع میکنن از غذا مرگ شانس خوبی هم توی این دست نداره و با وجود اختلاف امتیازشون تصور باختش خیلی هم عجیب نیست. نات هم به تلاش بیسمرش برای اثبات این که خیلی آدم موفق و پولداریه و کارهای زیادی داره که باید انجام بده و اینا ادامه میده و همچنان بازی میکنن. صدای موسیقی رو میشنویم که هر لحظه بیشتر و نور کم و کمتر میشه و صحنه تاریک میشه. صحن جدید زمانی شروع میشه که بازی تموم شده و نات داره امتیازهاشو میشمره. نات میگه خب 50 هش به نفع من تو باختی مرگ ناراحته به دسته ورقها نگاه میکنه خودش رو به خاطر بازی افتضاحش سرزنش میکنه اما نات خوشحاله و بهش میگه که یک روز رو ازش برده حالا هم باید زودتر بره و تنهاش بذاره مرگ جا میخوره به نات میگه واقعا داری جدی میگی؟ نات مقرور و سرخوش میگه آره من بردم برو مرگ دستپاچه میشه و تکرار میکنه که فکر میکرده این فقط یه شوخیه و نگران اینه که امشب رو کجا بگذرونه نات مسخرش میکنه و بهش پیشنهاد میده که بره سینما یا یه ماشین رو برای چرخیدن توی خیابونا کرایه کنه و یادآوری میکنه که بهش 28 دلار هم بده هم بدهکاره. مرگ درمونده جیپاش رو میگرده و به چند تا تک دلاری که همراهش نگاه میکنه نات میگه چکم ازت قبول میکنم ولی مرگ عصبانیه انگار خیلی بهش برخورده جواب میده که اصلا حسابی نداره که بهش چک بده و توضیح میده که این پولی که داره رو برای بردن نات به اون بر نیاز داره از نات یه فرصت دیگه برای بازی فردا میخواد تا بدهیش رو باهاش صاف کنه نات میگه هر جوری که اون بخواد باهاش بازی میکنه چون با این مدل بازی مرگ میتونه یه هفته یا حتی یه ماه دیگر رو هم ازش ببره مرگ میره و نزدیک در وای میسه. از نات میپرسه هتل خوبی اطراف کجاست و بعدش یادش میاد پولی برای رفتن به هتل نداره و مجبور تموم شب رو توی میدون فورد بشینه. همون موقع روزامه نات رو برمیداره که ببره اما نات سری روزامه رو پس میگیره. مرگ در حال بیرون رفتنه و بلند بلند خودش رو سرزنش میکنه که چرا همون موقع که رسیده ناترو با خودش نبرده و علکی سرگرم بازی شده. همین لحظه دار میده که قالیه روی یکی از این پله ها پوسیده و مرگ باید موقع پایین رفتن از پله ها مراقب باشه. و دقیقا همون لحظه صدای افتادن مرگ از روی پله ها میاد. نات آه میکشه و سری میره تا به دوستش، زنگ بزنه براش تعریف میکنه که یه کسی اینجا بوده که خودشو مرگ معرفی کرده و اون هنوز نمیدونه که این شوخیه یا نه اما در کل اون اینجا بوده و یکم با هم بازی کردن و چقدر مرگ دست با بوده دوست شرفاش رو باور نمیکنه و تلفن رو قطع میکنه. می کنه.نم این مرگ در میزند همینجا به پایان میرسه. خب امیدوارم از شنیدن نمایشنامه‌ی مرگ در میزند لذت برده باشید و من هم تونسته باشم اجرای درستی از نمایشنامه برای شما داشته باشم. خلاصه ای نمایشنامه این قسمت رو هستی یوسفیان انجام داده که ازش دوباره ممنونم و از شما هم ممنونم که الف رو تا اینجا شنیدید. اگر از مخاطبان ما در اپلیکیشن‌های پادکست نیستید خیلی بهتره که از طریق اپهای پادکست مثل کاست باکس، گوگل پادکست و یا اپل پادکست رو و برای بهتر شدن کار ما نظر بدید و اگر هم دوست دارید از این پادکست حمایت کنید پادکست الف به دهمین قسمتش رسید افتخار میکنیم که هر قسمت پیشرفت قابل توجهی داشتیم و مخاطبان بیشتری سراغمون اومدن و رو شنیدن شما هم پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید امیدوارم که سرحال و سلامت بمونید تا قسمت بعدی این نقش ماند از قلمت یادگار عمر